بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان حامین حامین من الرحمن الرحیم این کتاب از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است کتابم فصلت آیاتو آن عربیا لقوم علمن. کتابی که آجاسش هر مثل بی را در جای خود بازگو کرده. قرآن عربی باگویا برای جمیجتیک آگاهن. بسم و نبیم فاعرض اكثرهم فهم لا یسمع. قرآنی آنی که بشارت بهنده و بیل بهنده ولی اکثر آنان رویگردان شدند پس چیزی ننی شنباند وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعونا اولیه وفی آذائینا وطر ومن بیلنا و بیلک حجاب فاعمل اننا عامل آنها گفتند قلب ما در پوشش های قرار گرفته و گوش های ما سنگین است و میان ما به تو حجاب وجود دارد خارا که چنین است تو به دنبار عمل خود باش ما هم برای خود عمل می کنیم و للمشركين. بگو من فقط انسان مثل شما هستم که این حقیقت بر من وحی می شود که مسلما معبود شما تنها یکی پس تمام توجه خیش را و او کنید و از وی آمردش طلبید وای بر مشرکان الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون فمن حاق را ادا نمیکنند و آخرت را منکرند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند فاو تا دا شجاوته میدارند قل اینکن لتحفرون بالذی خلق ارضا فی یومین و تجعلون لهم مؤندابا ذلك رب العالمین بگو آیا شما با ان ذاتی که زمین را در دروز آفری کافر و برای او همان انتهای می شبید او پربادکار چهانیان وجعل فيها روادا من فوقها وبلغ فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواه. او در زمین که های قراطار با برکات در آنا و مواد خزاوی مختلف آن را مقدر فرمود اینها ها همه در چهار روز بود درست به اندات نیاز تقاضا کنندگان ثم استعال السماء وهي هی دخان فقال لها ولی الارض کیا او کرها قَالَتْ أَتَيْنَا طُوفَانِين سَفَتَ بِآفَاقِ نِشْ أَسْمَانِهَا فَرْدَاغَ بِحَالِ كِي دُودِ بُو غاص، وَزَمِين گَاس بِخُوشِي خاص يَا بِزور بِیَا کِي گُفْتَنْ بِخُوشِي آمَدِين سَقَطَ إِنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَرْحَتِي سَمَاءٍ أَمْرَهَا و زینن سماء الدنيا بمضاریح و حفظا ذالک تقدیر العزیز در این آنها را به صورت هفت آسمان در دروس آفرید و می میخواد در هر آسمانی مقدر فرمود و آسمان پاین را با چراغ ها زینت بخشیدیم با از اصطراق سمع شیاطین حس کردیم اینا تقدید خداوند دانا تاین این عرض فقل ان زوجتکم طائفه مثل طائفه عاد و ثمود پس اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را به سائقه همانند سائقه عاد و سمود تهدید میکنم اذ جاءتهم الرسل من أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أغسلتم در آن هنگام که رسولان آنها از پیشرو و پشت سر به سراغشان آمدند و آنها را به فرستش خدا یک دعوت کردند، آنها گفتند اگر پروردگار ما میخواست، فرشتگانی می کرد لذا ما به آنچی شما مبعوض به آن هستید، کافریم. فأما عاد فاستكفروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فقومي عاد بنا هكثر جميل تكبر ورفيداند وكفتاند شكاسي أزمان من آیا آنها نمی دانستند خداوندی که آنها را آفریده از آنها قویتر است؟ آنها پیوسته، آجات ما را انکار میکردند کردند فا ارسلنا فی ایام نحسات لنذیکه و معذاب الخذیب الحیات الدنیا و لعذاب الاخرت احزا و باد شدید به حول انگیز و سرد و سخت در روزهای شوم و پرخوبار بر آن آنها فرستادیم تا عذاب خواه کنند را در زندگی دنیا و آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خواه کنند است و یاری نمی شبان. وَأَنَّ مَثْمُودَ فَأَذَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ را عَلَى الْبُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْتُبُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ کردیم ولی بینایی را بر رهیابی ترجیح دادند پس به سبب اعمالی که مرتکب می شدند عذاب آواز مهیب ایشان را فرو کرد و نجین الذین آمنوا و کانو یتقون و اوم یخشر اعضاء الله لن نار فهم یوزعون و ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند نجات دادیم و روزی را بیاد آرید که دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده شده و سپس ایشان به دسته تقسیم می شوند حتی اذا ما رساند گوش ها و چشم و پست و گفته‌اند که آن‌ها به آن‌ها می‌گویند که آن‌ها به قانون انطقن الله انطق خلقكم اول مرة و آنها به تن خود میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید آنها جواب میدهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق در آبرده ما را گویا ساخته و او شما را در آغاز آفرید بعض كشة بصوي أوسط. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمومكم ولا أرقاكم ولا جلودكم ولا ظننتم ولا كمظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شما اگر گناهانتان را مخصی می کردید خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوست تنتان بین داشتید بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمال را که انجام می دهید نمی تاند و آره این گمان بدی بود که درباره‌ی فرواستارشان داشتید و همان موجب هلاکت شما و کشی به انجام از سیار شدید فاین فا و این اگر آنها صبر کنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست بَاكَثَرْتَ قَوْلَكَ أَفَنَمَا مو كَانَ مَوْعِدُ أَفْقَرَارٍ لَّنْ يُكِرَّمَ فَخَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم من الْجِنِّ والإن والإن ما برای آنها هم نیشینان زشتیرت قرار دادیم و آنها زشتی ها را از پیش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی در آنها تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراه که از جن و انت که قبل از آنها بودند گرفتار شدند آنها مسلما دیانکار بودند وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كفرا فتن غوش به ان قران فراند هي وبهم فَأَذُوقُوا قَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَسْوَأَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ بطور مسلم باطفران عذاب شدید میچشانید و آنخا را و بترین اعمالی که انجام می دادند جزا می دیدید. لهم تی ها دار القلب جزاء بما کنون بی آیاتنا يجحزن. کیفر دشمنان خدا آتش است که در آن فرای جابدان شامد جزایی در مقابل این که آویات ما را انکار می کنند. وقال الذين كفروا ربنا اين الذين اضلانا من الجن والان نجعلهما تحت اقدامنا ليفسونا من الاسلمين كفرن گفتند پروردگارا آنهایی را که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا ذلت پای خود بكساريد بلكت مالشان كنيم تا از اسفستريين ما تنبغشان؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة. کسانی که گفتند پروردگار ما خداوندی یکان است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنها نازل می شوند که نترسید و خمکین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و فيها ما انفسكم و فيها ما تدعون ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و برای شما هرچی بخواهید در بهشت فراهم است. و هرچی طلب کنید به شما داده می شود نزولا من غفور رحیم اینها با عنوان فجیلاگی از توی خداوند غفور و رحیم هستند و من احسن قولا من من دعا الالله و عمل صالحا و بهتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمین هستم. هرگز نیکی و بدیه به دیرابانیکی دفع کن تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم وتمیمی شوند اما به این مرحله جز کسانی که دارای صبر و استقامتند نمیرسند و جز کسانی که بهرۀ عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن ناگل نمی کرتا و اما ینزغنک من الشیطان نزغم فاستعد بالله انهو هوا سمیع العلیم بهرگاه بسطه از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه طلب که بیگمان او شنونده و آگاه و من آياتِ ليل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم ياء وتعبدوا. از نشانه های آو و روز با خوشی و ما برای خوشی و ما سجده کنید. برای خدایی که آفرینندگی ان آنها سجده کنید. اگر میخواهید هاکی او را تبه او دست نموسی فاذ اینی تذکر فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و وهم لا یئمون هرگاه تکبر کنند کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و برای او تسبیح میگوینند با نمیشوند وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَى لَمُحِيِّ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ از آیات او این است که زمین را خشک و خاده می‌بینی، اما هنگامی که آب بر آن میفرستین به جنبش در میاکد و نمو می‌کند. و من که که آن را زنده کرد مرتکان را میز زنده میکند بیگمان او بر هر چی تبانا این <تصفح> الذین یلحدون فی آیاتنا لا افمن یلقات النار خیر ام من يأتي آمنا یوم القیامه اعملو ما شئتم اینه بما تعملون بصير کسانی که آجات ما را تحریف می کنند بر ما سوچیدن نخواهند بود اویا کسی که در آسه شب می شود بهتر است؟ یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آزد. هر هرچی میخواهید انجام دهید بی گوماند. او به آنچه انجا. انجام می دهید بی نام این الذین کفروا بالذکر لما جاءه و کسانی که به این ذکر هنگامی که به سراغ آنها آمد کافر شدند و این کتابی قطعا شکر ناتذیر که هیچ گونه باطل نا از پیش رو و نا از پشت سر به سراغ آن نمی آکده چرا که سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. ما یقالو لک نسبت های که به تو میدهند همان است که به پیامبران قبل از تو داده شده پر وقار تو داراو یک و با مجازات تا هرگاه آن را قرآن عجمی قرار می دادیم، میگفتند می گفتند چرا آگیاتش روشن می؟ آیا قرآن عجمی از پیغمبر عربی درست است؟ بگو این برای کسانی که ایمان آورده اند، هداوگیت پترمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند، گوش سنگین است، گوی نابینا هستند و آن را نمی بینند، آن همچون کسانی هستند که از راش دور صدا زده می شفند. وار لقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه ان سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم مريب ما بمصاق كتاب آسمانی داشته آن اختلاف شد و اگر فرمان از نافیه پرواز کار در این زمین صادر نشده بود در میان آنها داوری می شد ولی آنها هنوز در کتاب تو شهف و تقریب دارند من عمل صالحا و من فعليه و ما بظلام که عمل صالحی بجا آورد نفعش برای خود او و هر کسی بدی کند به خیشتن بدی کرده و پروازگارد هرگز به بندگان تتم نمی إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أتمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا اسرار قیامت را تنها خدا می تاند هیچ میوی از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ معنف باردار نمی گردد به وضع هم نمی مگر به علم و آگاهی او آن روز که آنها را ندامی دهد کجا هستند شریکانی که برای من می پنداشتید آنها می گویند پر برکاره ما داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم ما <تصفح> لهم من و همه ی معبودانی را که قبلن می خاندند و گم می شود و می هیچ پناهگاهی ندارند عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی انداز محباند نهاویت باره هم لا يسأم الانسان من دعاء الخیل و امسته الشر فی اوسون قنوط انسان هرگز از تقاضای نیکی خستنه می شود و هرگز شر و بدی و او رسد و نومیت می کستند ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرا أمسته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئوجعت إلى ربي إن لعنده لل و هرگاه او را رحمت از سوی خود بعد از ناراحتی به چشانیم می گوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بودم و کما نمیکنم کنم بر پاک شود هرگاه به سوی پرورکارم باز کردم برای من نفت او پاداش های نیکرد ما کافران را از اعمالی که انجام دادند به دودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها میتشانید و ایزا انعمنا علی الانسان اعرض و نعاب جانبه و ایزا مسته الشضر فدود ان عریف به هرگاه نعمت به انسان دهیم روی میگفتاند و با, با حال تكبر از حق دور می شود ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر دارد قل أرتم ن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد بگو با من خبر بهید اگر این قرآن از سوی باشد و شما با آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که با آن مخالفت می کند سنوریهم آیاتنا دیل آفاق و انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکیب رب که انهو کل شیعین شهید بزودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میدهیم تا آشکار گردد که او حق است آیا کافی نیست که او بر همه چیز شاهد و گواست الا این في بی مرية من لقاء ربهم الا این بكل شيء محيط. آگاه باشید آنهاد لقای کارشان در شک و تردید ولی خداوند به همه چی احاطه دارد